آی شما هم مثل خیلی های دیگه عادت دارید دیگران رو قضاوت کنید، شرطی که توش گیر افتادید رو قضاوت کنید، قرب بزنید، ناله کنید که چرا اون این رفتار رو من اصلا نمی‌فهممش. چرا تو اینجوری هستی؟ چرا دنیا اینجوریه؟ آی شما هم اینجوری هستید؟ اگه از جامعه که توش بزرگ شدید اینها رو یاد گرفتید، باید بدونید که یک هیپنوتیزر هرگز اینطور نیست چون که زمانی که شما در واقع دارید با علم هیبنوتیزم زندگی رو پیش میبرید و با آگاهی که از اصول هیپنوتیزم دریافت کرد و یاد گرفتید اون موقع متوجه میشید که اصلا موضوعی نیست که شما بشینید قور بزنید بگید چرا این اینجوریه چرا اون آدم نمیفهمه که من چی میگم چرا این همه بهش گفتم بازم همکار همیشگیشو میکنه خب چیزی که شما در اون شرایط متوجه میشید و بهش آگاه میشید اینه که شما تبدیل میشید به یک نیروی منعتف انتاف پذیر اثرگذار به صورت داینامیک و پویا. روی طبیعت روی تصمیم دیگران روی وجود دیگران روی سیستم های مختلف خب حالا چه یه سیستم اداری و دولتی مثلا چه سیستم کاری چه رابطه عشقی که توش هستید هر سیستمی و در واقع هیبنوتیزم باید این قدرت رو به شما داده و که شما دیگه نتونید کسی قضات کنید میدونید چرا چون وقتی شما دارید مثلا غضاات کنید یکی و که چرا این داره این کار میکنه چرا این به زندگی اینطور نگاه میکنه چرا این نمی که پول باید مثلا فلان طور خرج کرد یا خرج یا هر چیزی شما آگاه میشید که اون آدم هر کاری هم که داره میکنه هر جوری هم که الان داره تو زندگی رفتار میکنه علتش اینه که الان تو اون تونل واقعیت یعنی واقعا ادراکاتش جوری محدوده و جوری. داره دستکاری میشه تا اصل حقیقت این جهان که اصلا بیش از این نمیتونه بفهمتون لحظه پس شما دیگه قضاوتگر نمیشید و وقتی که قضاوت کننده نشدید به چرا این اینجوریه چرا اون اونجوریه حالا میتونید اثرگذار و اینفلوئنسر بشید میتونید اینفلوئنس و در واقع اثرگذاری داشته باشید روی تصمیم دیگران خب چون الان دیگه احساسی نیستید که هی بزنید نغ بزنید چرا این کارو کرد چرا با من اونطور حرف زد چرا زندگیشو داره اینجوری بازی میده خب شما آگاه میشید که هر کاری که هر کسی داره انجام میده به خاطر اینکه توی تونل واقعیتی گیر کرده که واقعاً داده هایی که تو اون لحظه داره قدرت تحلیلی که مغزش داره همه چی وجودش همونقدر الان پس دیگه قضاوتی باقی نمیمونه اما از اون طرف شما به عنوان کسی که در واقع یک عامل داینامیک و پویا و خوشیار هست میتونید با علم هیپنوتیزم با درک هیپنوتیزمی که دارید روی دیگران اثر بذارید ببینید یه موضوع مهمی که وجود داره اینه که کلن توی زندگی اگه شما هیبنوتیزم نکنید هیبنوتیزم میشید یعنی اگه شما خودتون رو یا دوروبریاتون رو یا یه فرد دیگر رو هیبنوتیزمش نکنید حواستون نباشه که این شمایید که باید یه واقعیتی رو برای شکل بدید یا یه کس دیگه برای اون آدم یه واقعیتی شکل میده بعد سوء تفاهم میشه رابطه اون فرد با شما مثلا به هم میرزه بیصری مشکلات تولید میشه یا اینکه خودتون هیپنوتیزم میشید اصلا میگی چرا این اینجوریه و این در حالیه که اگه شما آگاه باشید که زندگی ذاتن هیپنوتیزم هر لحظه ای همه ماها اون چیزی که میبینیم اون چیزی که چشممون به ما داره تفسیر میکنه اون چیزی که ذهنمون به ما در واقع تفسیر میکنه این هپتیسم و شما میگید فلانی خیلی آدم خوبیه فقط این تیل ذهنه ممکنه دو ساعت برای یه بحث ریس پیش بیاد برید واقعا آدم بیخودیه چرا چون شما داریم تو این تونل هایید و درک مهم اینه که متوجه شید. اگه هیپنوتیزم نکنید هپنتیز میشید پس اصلا کلا زندگی روبط با هپنتیز میش ببرید و دقت این معناشی نیست که شما یه آدم میخواد بشید که هی داره عضو میخواام کرد میریز یا دستکاری میکنه دور وبری میخواد آدما رو به دست بگیره نه موضوع اینجاست که حتی اگه شما بخواید یه حقیقت ناب رو به کسی برسونید اگه هیپنوتیزم رو بلد نباشید اگه دقت کنید که حالا اون داره از حرفای حقیقی شما چی رو برداشت میکنه و میسازه بر خودش موقعی اصلا حقیقت شما جوری به دستش میرسه که اندازه دروغ هم ارزش نداره اندازه توهم بیخود هم ارزش نخواهد داشت پس خیلی مهمه که مثلا ذاتا ساختار جهان بودن در این لحظه بودن در این جهان هپنتیزمی همه چیز هپنوتیزممی بودن شما تجربه که خودتون از زندگی دارید که یک من دارید انگار توی جهان ویرون را میره. اینا همه برساس تلقین ها و هپنتیز ها شکل گرفته پس هپنوتیزم کنید دیگران یا خودتون رو در اون چیزی که میخواد تا هپنوتیزم نشید این خیلی نکته مهمیه. اگه به بهثروتی برسید باید ختون هیپتیز کنید درباره‌ی اینکه واقعا باور کنید اون مقدار پول رو دارید لایقش هستید میتونید داشته و شید باورهای مطرکانده رو کنار بذارید وگرنه شما گیر میکنید توی تونلایی هیبنوتیزمی که اصلا میگید خب من که نمیتونم من که کارم نمیشه اما وقت ما حرفی دیگر رو خواهید زد پس هیپنوتیزم کنید و هیپنوتیزم نشید